در ابتدای اسناد کافی <تصفيق> کسانی واقع میشوند که به هیچ انوان تاریخشون و طبقهشون به این نمیخوره که از مشایخ مرحومه مرحوم کلنی باشن یونس صدر اسناد کافی واقع میشه یونس بن عبدالرحمن ابن عمر صدر اسناد کافی واقع میشه سهل ابن زيال صدر اسناد کافی واقع میشه ممکنه است از دنی سعی کرده نه دنیا مزه نصیر حماد صدر است علي يوغ ناقب صدر اسناد کافی واقع میشه یعنی اسنادی که مرحوم کلیمی در اون اسنا در موارد متعدد در موارد متعدد از یک راوی با دو یا سه واسطه نقل میکنن در بسیاری از اسناد مرحوم میبینید مرهمه گذاشتهش صدر سند چه اتفاقی افتاده آیا این اسناد اسناد مرسلن یعنی مرحوم کلینی میدونیم جواب شد آرام آرام میخوام همین رفقا بیان همه رفقا بیان من با شما همراه بشم شما که الحمدالله گوی سقویت از من رو بودید ما در کتاب کافی با پدیده ای رو رو هستیم مخصوصا در اسناد ابن ابي عمر، گاه در اسناد احمد بن محمد، گاه در اسناد سهل بن شما روایت رو در کافی دارید؟ علي بن ابراهیم عن طويهل عن ابن عبی عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام. فرنده شماره يکتونه. سند شما روی دوی شما ابن عبی عمر ان حفظ بن البختری ان بختری هم نخونید دفعا بختری غلطه ان نبی عبدالله عليه السلام در اصنادتون حدیث دارید محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان حماد ابن ایسا ان حریستانده بر حماد ابن ایسا ان الحسین ابن سعیب در اسنادتون داری محمد علی ابن ابراهیم اگه جلسه بعد بشه این گدشتو پای اینجوری بیزرن چون من خیلی احساس بدی دارم نسبت چون خوشتم به دفعه هست علی ابن ابراهیم ان محمد ابن ایسا من یونس ابن عبدالرحمن یونس خب سوال ما که میدانیم ابن ابی عمر متوفای حدود 220 ابن حماده و نیسا متوفای 219 و یونس ابن عبدالرحمن هم همین حدوده و میدانیم در اسناد فراوانی مرحوم کلینی از اینها عموما با دو واسطه نقل میکنن تو این اسناد چه اتفاقی افتاده؟ آیا دست کلینی تو این اسناد از بیان واسطه بین خودش و اینها خالی بوده و عملا این اسناد مرسلن یا اینکه این اسناد این مرسل نیستن یک پدیده فراگیر در شیوه سندنگاری اتفاق افتاده که ما بعد اون شیوه رو بشناسیم اصطلاحاً فقط مثلا داریم مثال رو فاقا بیان می‌کنیم مشکل میشناسیم تا بعد ببینیم چرا تعلیق می چرا سند معلق چگونه سند معلق شناخته میشه اصلا سند معلق خودش در مصدر شناسی چه پیامی به دنبال داره کلی پیام توش نرفته است که اگر حواستون اینجا جمع باشه آرام آرام داره اون میخواد تو بحث های اعتبا حرف های نو بزنیم یک پدیده داریم یک پدیده داریم به نام تعلیق در اسناد تعلیق در اسناد تعلیق در اسناد اصلا تعلیق یعنی چی رفع از ذات لغوی وابسته کردن تعلیق یعنی وابسته کردن غیر ها غیر تنجیز غیر تنجیب غیر تنج... اصولیش کردم غیر تنجیز یعنی شما اگه بخواید اعتبار این سند کامل بودن این سند رو احراز کنید باید به جای دیگه رجوع کنید گاهی اوقات جای دیگه سند قبله سند قبله یعنی مرقوم کلنیش اون علی ابن ابراهیم ان عبیه ان ابن ابی عمر رو دارن دیگه تکرار نمی کنن این رو به اعتبار ذکر طریق خودشون تا ابن ابی عمر در سند بعد حذفش میکنن ببین میگن تعلیق در اسناد تعلیق در اسناد هیچ منافاتی با کامل نویسی ندارد یک شیوه سند نگاری است که هم میان ما و در عموم محدثان ما رایج بوده شما از اصول ست عشر بردارید و رقم زدین توش افتاده محاسن این اتفاق توش افتاده در کتاب های حدیثی برادران ما هم اتفاق افتاده خب چه ات که خیلی روشنه حسینیشا رو وقت ما رو میگیری نه گاهی اوقات برخی از بزرگان ما در همین نویسندگان کتب اربعه متوجه این پدیده نشدن و برخی از اسناد معلق مرحوم کلینی رو مرسل گرفتن با هم بریم سراغ تحذیب اگر شما در تحذیب یونس و مرسلن رو با هم جستجو کنید یونس حالا من رو میزنم که ممکنه بگی مرسلن از یونس یونس مرسلن تهذیب 4 صفحه 111 حدیث 59 محمد ابن یعقوب مرسلن ان یونس بن عبدالرحمن درسته خب مت چیه من منع غیراتن کارو نداره که اینجا ما تایپ میکنیم منع من درستش کردم من عقیراته کافی ا شیخ درست گفتن شیخ درست گفتن ها واقعا مرحوم کلینی یوسفی که نمیتونه رد کنه نه کافیه یه ذره سند بعدی هم مرسله یه ذره حوصله بکنی یه ذره بریم بالا علی بن ابراهیم ان اویه ان اسماعیل بن مرار علی ان یونس ان ابن اسکا این که مرحوم کلینی یونس رو میذارن اینجا در مقام مرسل نویسی و مجامل گویی نیشتن. نه یک شیوه سندنگاری است که مکرر مکرر در خب شیخ توسی به گاه نگارش تهذیب به هر دلیلی متوجه تعلیق نشدن از اون طرف هم میدونن یونس نمیتونه استاد کلونی باشه وقتی این معادله رو میزنن کناره هم میشه روا محمد ابن یعقوب مرسلن ان خب یک روایت مصند یک روایت مصندی که بعدن خواهیم گفت تمام روایاتی که اسمایل ابن مرار از یونس نقل میکنه ابن ولید میگه من به همش فتوا میدم بلو کان مرفرده بلو خب یکی روایتی که زیر پای اعتبارش خیلی قویه به دلیل عدم توجه به یک پدیده ساده سندنگاری مرسل بشه که نا بگش میشه